سلام و درود خدمت همه شما شنوندگان عزیز و دوست داشتنی کانال هزار افسان. امروز هم با یک قصه زیبا دیگه در خدمت شما هستم اسم این قصه شاهزاده نارسیسوس و شاهدخت بوتنتیلاست بریم که با هم دیگه بشنویم روزگاری، پادشاه و ملکه زندگی می کردند که اگرچه سالهای زیادی از عمرشون می گذشت، سلیقه و روش زندگیشون شبیه مردمان امروزی بود. اسم پادشاه کلورلیف بود. اون شکار رو از هر چیز دیگه بیشتر دوست داشت. اما این باعث نمیشد که به سرزمین و حکومت خودش بی باشه و به خوبی از عهده فرمانروایی برمیومد. یعنی هیچ وقت از رسیدگی به امور حکومتی باز نمیموند. در مورد ملکه هم باید گفت که زمانی بسیار زیبا بود، و دوست داشت که همچنان همه اون رو زیبا بدونن. چیزی که همیشه خاطر ملکه ها رو کاملا ارضا میکنه. اسم ملکه فریولا بود و تنها فکر اون در زندگی این بود که خوش بگذرونه و سرگرم باشه. مجالس پایکوبی، رقص با نقاب و گردش های خارج از شهر یکی بعد از دیگری باعث شدند که اون رسیدگی به امور کشور را نادیده بگیره و در کنار پادشاه نباشه. اگر کسی بخواد دست به کاری بزنه، باید خودش به تنهایی تلاش کنه. اما تا زمانی که پادشاه اسبها و سگهاش را داشت و ملکه هم با نوازندگان و بازیگران خودش زمان میگذروند، اصلا خودشون رو برای کاری به زحمت نمیداختند. پادشا، کلولیف و ملکه فریولا، فرزندی داشتند شاهدختی که از همون دوران کودکی بسیار زیبا بود و حالا چهار سال داشت ملکه بسیار بهش حسادت می کرد و خیلی می که وقتی شاهدخت بزرگ بشه مردم زیبایی اون رو بیشتر از ملکه ستایش کنند. برای همین ملکه تصمیم گرفت که دخترش رو پنهان کنه تا زیبایی خودش هموار زبان زد باشه اون دستور داد که خونهای کوچیک در فاصله نه خیلی دور در گوشه ای از باغ قصر در کنار رودخونه بسازند و دیواری بلند دور اون بکشند. شاه دختر جذاب در این خونه زندانی شد. ندیمش که لال بود از اون پرستاری میکرد. یحتاج زندگی رو از دریچه ای به اونها میدادند. نگهبانان همیشه بیرون حصار دیواری کشیک شک می و دستور داشتند سر هر کسی رو که تلاش می کرد به اونجا نزدیک بشه قطع کنند. اونها هم واقعاً بدون اونکه که لحظه درنگ کنند این کار رو می کردند. ملکه با ظاهری ناراحت و همه گفته بود که شاهدخت بسیار زشت و دردسرسازه و از اونجا که امکان نداره کسی بهش دل ببنده تصمیم گرفته که به خاطر خودش هم که شده اون رو دور از چشم دیگران نگه داره. اون اونقدر این ماجرا رو تکرار کرد که بالاخره همه درباریان اون رو باور کرده بودند. اوزا به این نحو بود تا اینکه شاهدخت به 15 سالگی رسید. شاهزادهی به نام نارسیسوس با اطلاع از کارای ملکه فریولا به دربار اون اومد. اون خیلی بزرگتر از شاهدخت نبود و به زیبایی و خوشندامی هر شاهزاده دیگی بود که ممکنه در عمرتون دیده باشید. در واقع با توجه به سنش خیلی گیج و سردرگم نبود. پدر و مادرش پادشاه و ملکی کشوری ای بودند که شاید داستان زندگیشون رو روزی بشنوید. اونها در یک زمان مردند و حکومت رو برای بزرگترین پسرشون باقی گذاشتند. کوچکترین پسرشون یعنی شاهزاده نارسیسوس رو هم تحت حمایت پری در آوردند. اونها هرچه که از دستشون برمیومد انجام دادند چون پری به همون اندازه که قدرتمند بود مهربونم بود و در آموزش شاهزاده کوچیک از هیچ کاری فروگذار کرد و هر چه رو که میدونست بهش آموخت و حتی بعضی از اسرار پریان رو هم بهش یاد داد به محض اینکه شاهزاده بالغ شد پری اون رو برای سفر به سراسر جهان راهی کرد در تمام اوقات پنهانی مراقبش بود و در مواقع لزوم برای کمک بهش آماده میشد. پیش از اون که سپار بشه، حلقه بهش داد که اگر در موقع خطر اون رو به انگشت می‌کرد، نامرئی میشد. این حلقه ظاهری کاملا معمولی داشت. شما بیشتر اوقات در بارشون چیزهایی شنیدید، هرچند که هرگز یکی از اونها رو ندیدید. شاهزاده در راه سفر خودش در این جهان پهناور برای به دست تجربه درباره آدمها و چیزها پاش به درباره ملکه فریولا باز شد در اونجا به ترزی شایسته از اون استقبال کردند ملکه و تمامی بانوان از دیدارش بسیار خوشحال شدند و پادشاه بسیار معدبانه رفتار کرد اون نمی نمیدونست که چرا تمام بانوان دربار براش سر و دست میشکنند شاهزاده نارسیسوس از اونچه که در اطرافش میگذشت لذت میبرد زمان براش با شادی زیاد میگذشت خیلی طول نکشید که مطالبی درباره شاهدخت پوتنتیلا شنید و چون تا اون موقع این مطالب بارها و بارها تکرار شده بود و اینجا و اونجا به شاخ و برگ میدادند و اون رو هیولایی زشت معرفی میکردند شاهزاده کنجکاف شد تا شاهدخت رو ببینه اون تصمیم گرفت به کمک قدرت حلقه جادویی نقشش رو عملی کنه و خودش رو به شاهدخت برسونه پس خودش رو نامرئی کرد و بدون اینکه نگهبانها بو ببرند کسی با اونجا نزدیک میشه از بینشون گذشت بالا رفتن از دیوار کمی سخت بود وقتی بالاخره خودش رو به داخل خونه رسوند مظهور زیبایی آرامش بخش اون محیط شد با دیدن دوشیزه ظریف و زیبا که در بین گلها گردش میکرد چنان شیفتش شد که هوش از سرش پرید. اون که تا اون موقع فکر میکرد به جستجوی حیولایی بدمنظر اومده و وقتش رو بیهوده تلف کرده تازه متوجه شد که اون هیولای خیالی کسی به جز شاهدخت زیبا نبوده. اون یک دل نه بلکه صد دل به پوتنتیلا باخت. مطمئن بود کسی زیباتر از اون وجود نداره. شاهدخت کنار جویبار نشسته بود و با گلهای آبی فراموشان مکن برای گیسوان مواج طلاییش تاج درست میکرد اون با پرندگان و حیواناتی که در قلمرو کوچیکش زندگی میکردن چنان رفتاری آرام و مهربان داشت که تصورش هم مشکله نارسیسوس هر حرکت اون رو زیر نظر گرفته بود با رویایی سرخوشانه به طرفش رفت اما هنوز جرعت نمیکرد خودش رو ظاهر کنه. اونقدر محجوب بود که شرم داشت یک دفعه جلوی شاهدخت ظاهر بشه. وقتی که شب شد و ندیمه شاهدخت رو به اتاق کوچیکش برگردوند، شاهزاده احساس کرد که باید به قصر فریولا برگرده. چون میترسید که غیبتش جلب توجه کنه و کسی پی به گنجینه تازه یافتش ببره. اون سعی کرد بی و بی تفاوت باشه، چون وقتی کسی شاد و حال باشه، این حالت مهمترین راه برای برانگیزش بدگمانی دیگرانه. برای همین، وقتی با سؤالهای زیادی روبرو شد، رنگ به چهرش نمود و از جواب دادن تفره رفت. همین باعث شد که همه بانوان مطمئن بشند که اون به کسی دل باخته. پس نهایت تلاش خودشون رو کردند تا سر دربیارند بیارند که کدوم بانوی خوشبخت دل اون رو رو بوده؟ شاهزاده هر روز بیشتر به پوتنتیلا وابسته میشد و فقط به اون فکر می کرد اون همیشه نامرعی میشد و به دیدار شاهدخت میرفت قصدش این بود که در هر کاری بهش کمک کنه و تا میتونه اون رو سرگرم و خوشحال کنه شاهدخت که یاد گرفته بود در زندگی آرام خودش با جزئی ترین چیزها سرگرم بشه و تفریح کنه با چیزهایی که شاهزاده دائما براش فراهم میکرد و اون میدونست در کجا اونها رو پیدا کنه، همیشه شاد و خوشحال بود. نارسیسوس از دوست وفادارش ملینت خواست که اون رو به خواب شاهدخت بفرسته. طوری که وقتی اون رو در برابر چشماش دید، بتونه اون رو به عنوان دوستی وفادار بشناسه. اون چندین بار به خواب شاهدخت رفت. شاهدخت از تداوم این رویاهای سرگرم کننده به وحشت افتاد، اون در خوابهاش شاهزاده نارسیسوس رو مثل یار و آشق دلخسته خودش میدید. کمی بعد شاهزاده قدمی جلوتر رفت و سر صحبتهای طولانی رو با شاهدخت باز کرد. البته هنوز هم نامری بود. بالاخره شاهدخت از اون تقاضا کرد که خودش رو نمایان کنه. جوان هم که دیگه نمیتونست مقاومت کنه قول گرفت که قیافش هر جور که بود دوستش داشته باشه. شاهزاده حلقه را از انگشت خودش درآورد و شاهدخت با شادمانی بسیار نارسیسوس زیبا و شایستر رو روبروی خودش دید. حالا اونها راستی خوشبخت بودند. اونها روزهای تابستان طولانی رو در خونه داشتنی شاهدخت و در کنار جویبار گذارندند. بالاخره شاهزاده نارسیسوس مجبور شد اون رو ترک کنه. به نظرشون، زمان به سرعت برق گذشته بود. شاهدخت همچنان در جایی که بود موند و با رویاهای شاد شاهزاده سر کرد. هیچ چیز نمیتونست نارسیسوس رو از ذهنش بیرون کنه. تا اینکه یک دفعه در ابری غبارآلود سر و کله افسونگری قدرتمند به نام گرومدن پیدا شد و از بخت بد چشمش به پوتنتیلا افتاد. افسونگر با نگاهی به چشمان آبی جذاب شاهدخت و لبخند شیرینی که به لب داشت تصمیم گرفت که خودش رو فوراً ظاهر کنه. هر هرچند وقتی یادش اومد که دومین ردای آلیش رو پوشیده کمی ناراحت شد. ابر قبارالوت نشست و در برابر شاهدخت آرام گرفت. افسونگر ای زشت داشت. شاهدخت از دیدنش یکی خورد. از جا پرید و از ترس فریاد زد. اون هیکلی بزرگ و نخراشیده، یک چشم، دندونهایی دراز و لکنت زبان بدجوری داشت. با تمام این اوصاف فکر میکرد از سر شاهدختم زیاده. خیال میکرد فریاد ترس شاهدخت نشونه خوشحالی اون از دیدار افسونگره. بعد از لحظه مکس برای اونکه دوشیزه فرصت کافی برای ستودن اون داشته باشه، افسونگر تا جایی که عقلش قد میداد، با همون لکنت زبان سخنانی در تحسین دوشیزه به زبان آورد که البته اصلا به دل شاهدخ ننشست اما خودش از حرفهایی که میزد کیف میکرد پوتنتیلای بیچاره فقط میلرزید اون فریاد زد آه نارسیسوس من کجایی افزونگر که با دهان بسته به نشانه رضایت لبخند میزد گفت دوشیزه عزیز گل نرگس میخوای نرگس گل کمیابی نیست هرقدر بخوای برات میارم. در همون موقع چوب دستش رو تکون داد و شاهدخت خودش رو تا نیمه اندام در بین گلهای خوشبوی نرگس دید. واضحه که این چیزی نبود که شاهدخت میخواست. در همون موقع پریملینت که با نگرانی این گفتگو رو میشنید به این نتیجه رسید که زمان مداخله فرا رسیده. اون با تقلید صدای شاهزاده در گوش پوتنتیلا این طور زمزمه کرد. خطری ما رو تهدید میکنه. اما من فقط نگران تو هستم شاه دختم بس تقاضا می کنم اون چرا واقعا احساس می کنی بروز ندی امیدوارم راهی برای رهایی از این مشکل پیدا بشه شاه با شنیدن این حرف ترسید که مبادا افسونگر هم اونها رو شنیده باشه اما افسونگر با صدای بلند ازش خواست که حواسش رو به گلها بده و با لبخندی به نشانهی هوشمندی گفت که گلها رو برای اون فراهم کرده. اما وقتی شاهدخت به سردی گفت اونها گلهایی نیستن که میخواسته و بهتر اونها رو از اونجا ببره براش زربیه سختی بود. اون گلها رو ناپدید کرد. بعد گفت که خیلی دوست داره شاهدخت باش ازدواج کنه. پری میلینت دیگه منتظر نمون تا به شاهدخت هشدار بده. پس یک دفعه با ظاهری بسیار با شکوه ظاهر شد و فریاد زد. گرومد بسه این شاهدخت تحت حمایت منه و کمترین گستاخی در حق اون برات به اندازه هزار سال اثارت تموم میشه اگر بتونی با های معمولی قلبش رو تسخیر کنی مخالفتی ندارم اما به تو هشدار میدم که با حقههای همیشگید اصلا کنار نمیام این جملات به مزاق افزونگر خوش نیمد میدونست ای نداره و باید درست رفتار کنه و حواسش کاملا جمع باشه البته، اون به رفتار درست و شایسته و ظریف عادت نداشت، ولی فهمیده بود که به دست آوردن دل چنان موجود زیبایی به زحمتش میاره. ملینت که احساس میکرد خطر همچنان شادخت رو تهدید میکنه با عجله به سراغ شاهزاده رفت تا بگه که چیکار کنه. شاهزاده وقتی شنید افسونگر رقیبه شده بسیار خشمین شد. و ما نمیدونیم اگر پری ملینت اونجا نبود و اون رو به خونسردی دعوت نمی اون دست به چه کارهای احمقانه می زد. پری بهش فهموند که با چه افسونگر قدرتمندی روبروه و اگر خشمش رو تحریک کنه انتقام سختی از شاهدخت می گیره. چون اون ظالمترین و بیعدبترین افسونگره و قبلا به خاطر پلیتکاریهاش بارها به دست پری ملکه تنبیه شده. یک بار توی درختی زندانی شد و به خاطر وزش باد خشناک و توفنده که درخت رو از ریشه در آورد آزاد شد. یک بار دیگه هم زیر سنگ بزرگی در تای رودخانه به بند کشیده شد تا اینکه از سر اتفاق سنگ جابجا جا شد و اون باز هم آزاد شد. اما اینها هیچ وقت باز اصلاح اون نشد. بالاخره پری ملینت از نارسیسوس قول گرفت که هر وقت افسونگر پیش شاهدخت میره اون خودش رو مرعی کنه تا شاهدخت احساس امنیت کنه. به این ترتیب شاهزاده با حمایت پریملینت آماده رویارویی با افسونگر شد. اون اول با همه پرندگان در قلم رو شاهدخت دوست شد و به اونها یاد داد که در ترانه هاشون با شیواترین و آشقانه ترین آهنگ ها اسم اون رو بیارند و از خوبیهاش بگن و تمام روز بخونند که نارسیسوس چقدر دوستش داره گرومدن متوجه بود که این چیز تازه نیست چون پرندگان از آغاز جهان آواز میخوندند و همه آشقان به این گمان بودند که برای اونها میخونند اون تصمیم گرفت نمایشی آهنگین بنویسه که کاملا تازه و نو باشه و ارزش شنیدن داشته باشه افسونگر ظرف پنج ساعت چنین نمایشی رو آماده کرد موقع اجرا شاهدخ متوجه شد که در اون اوپرا فقط اشعار بی اهمیت و سوسمایه گنجونده شده. اشعار اپرا رو ده هزار گرباقه گرگرگنان میخوندند. خوندند. پوتین آیا ذلط به با نظری داری؟ تا با کمان چشمان زیبایت بر قلب افسونگر تیر پرتاب کنی؟ در واقع اگر نارسیسوس اونجا نبود و در گوشش زمزمه نمیکرد. و اون رو متوجه موقعیت نمیکرد کرد، نمی که چی به سر شاهدخت میومد چون اگرچه این حرفای پوچ و بیهوده اول تا حدودی باعث سرگرمی شده بود، اما در نهایت حوصلش سر سر برد. خوشبختانه گرومدن متوجه وضع موجود نشد. چون سرگرم شلاق زدن به بدن گرباقه های بیچاره بود که خیلی از اونها از شدت خستگی از پادر اومده بودن. اونها حتی یک لحظه هم استراحت نکرده بودند فکر بعدی شاهزاده برای سرگرم کردن شاهدخت این بود که چند نافگان قایق درست مثل قایقهای کلوپاترا که حتما در توی تاریخ مطالعه کردید به رودخونه کوچک قلم رو بهش بفرسته قایقها به طرز شگفت انگیز و با شکوهی آراسته شده بودند و ملکی بزرگ کلوپاترا در یکی از اونها تکیه زده بود همین که قایق به اون محلی رسید که پوتنتیلای زغ زده نشسته بود ملکی بزرگ پا به ساحل گذاشت و با مروارید شکوه و ارزشمندش در برابر شاهدخت ظاهر شد و گفت تو خیلی از من زیباتری زیبایی من منو به خطر انداخت پس حواست باشه که از زیبایی درست استفاده کنی بعد ناوگان کوچک به راهش ادامه داد تا در پیچ و خم رودخانه از نظر ناپدید شد گورومدن که این منظره رو دید با فهاشی گفت به نظرم این عروسک بازی اصلا سرگرم کننده نیست مگه یه مروارید خالی چه ارزشی داره اگه موروارید دوست داری هر قدر بخوایی به دامنت میریزم با این حرفها از جیبش سوتی در آورد که در اون اوندمید شاهدخت دید که آب رودخونه قلب قلب کرد و پر از حباب و گل شد. لحظه ای که صدها هزار صدف بزرگ روی آب اومدند. صدفها به آرامی به سمت شاهدخت رفتند و مرواریدهای خودش رو به پاهای اون ریختند. گرومدن با سرخوشی زیاد فریاد زد. به این میگن مروارید. واقعا هم اونقدر زیاد بودند که میشد هر راه باریکی رو در باغ پوتنتیلا با اونها فرش کرد و تازه مقداری هم اضافه می اومد خب دوستان تا اینجای یه قستر رو داشته باشید، انشاالله در قسمت بعدی با همدیگه شنویم که سرنوشت این سه نفر چی شد؟ روز و روزگار خوش. آیا تا به حال آرزو کردین که به سرزمین های سح سفر کنیم جایی که پری و کوطول ها زندگی میکنن؟